صفحه 139 گرفت که تشریفات طلاق زوجه خود را در آنجا به جای و هم در این شهر معمولیتی را که داشت و یک هفته طول میکشید انجام دهد و هم طاقت آن را نداشت که قضیه خیانت زوجه خود را مسکوت گذارد به علاوه آشنایان او در مسکو خیلی کمتر از پترزبورگ محل شغل رسمی وی بود و در اینجا قضیه طلاق زوجش سرصدایی راه نمیانداخت. کارنین همین که به شهر مسکو رسید به دفتر یکی از وکلای معروف و بر دست دادگستری رفت با اینکه در دفتر او اصحاب دعوی زیاد بودند کارنین کارت خود را برای وکیل فرستاد فوری وکیل به استقبال او آمده و با خود او را به اتاق پیش برد کارنین نگاهی به وکیل افکند و گفت پیش از آن که قضیه خود را برای شما شهر هم، باید بگویم که این کاری که انجام آن را میخواهم به عهده شما بگذارم از همه کس پوشیده بماند وکیل گفت من اگر نتوانم اسرار مردم را پنهان بدارم وکیل نخواهم بود کارلین گفت آیا شما نام مرا شنیده اید؟ وکیل قامت خود را به احترام خم کرد و گفت من نه فقط نام شما را شنیدم بلکه شما را میشناسم همچنان که مردم باید وزرای خود را بشناسند. کارلین گفت از بدبختی من است که باید شوهر فریب خوردهی باشم من اکنون میخواهم به طریق قانونی روابط خود را با زوجه خیش قطع کنم یعنی او را طلاق بدهم ولی به یک شرط و آن این است که او حق نگاهداری پسرم را نداشته باشد چشمان وکیل برقیزد و گفت آیا مقصودتان این است که تشریفات طلاق را من انجام بدهم؟ آری، من می خواهم از زوجه خیش جدا شوم و او را طلاق بدهم ولی به همان شرطی که اکنون ذکر و وکیل گفت آیا مایل هستید شهر هم که در چه مواردی طلاق صورت خواهد گرفت؟ کانین با اشاره سر جواب مثبت داد وکیل گفت قانون روس در موارد زیر اجازه طلاق می دهد نقص طبیعی و جسمی هر یک از زوجین قیبت یک از زوجین و نرسیدن خبری از او در مدتی زائد بر پنج سال خیانت در زناشویی. گمان می‌کنم قضیه شما مشمول نقص طبیعی و جسمی و غیبت زاید بر پنج سال نباشد. کارنین سر به زیرافکنده پاسخی نداد. پس باید خیانت در سناشوی باشد. و این بر دو قسم است. یکی خیانت با توافق زن و شوهر و دیگری خیانت آنها بدون اطلاع دیگری. باید بگویم که نوع دوم عملا به ندرت اتفاق میافتد. کارنین با تعجب و حیرت به وکیل نگاه کرده وکیل دانست که کارنین مقصود او را نفهمیده است از این رو چنین توضیح داد زیاد اتفاق افتاده است که زن و شوهر پی میبرم که زندگانی آنها با هم غیر قابل تحمل شده است از این رو توافق حاصل می کند که از هم جدا شود. در هر حال شوهر فریب خورده می تواند به وسیله به آوردن نامه های عاشقانه ای که بین زن خیانتکار و معشوقش رد و بدر شده است و یا دستگیری آنها در حالت معاشقه خیانت همسر خود را ثابت کند و البته در حالت دوم بهتر می تواند خیانت را ثابت کرد و اگر مرا در این قضیه وکیل خود قرار دهید دلایل قاطع و غیر قابل ردی خواهم آورد چهره کارنین سرخ شده و از جای گفت، بسیار خوب. در این باره خوب فکر کرده و تصمیم خود را تلفنی به شما اطلاع هم دارد. فصل چهارم، کارمین از دفتر وکیل معروف خارج شد. در حالی که در دریای فطر و اندیشه فرو رفته بود، هنوز مقدار طول خیابان را نپیموده بود که یک برصب خیشتن را روبروی برادر همسر خود ابلوسکی گیاد. او مایل نبود با کسی در موسکو ملاقات کند به خصوص برادر همسر خود، در هر حال به کلاه کلار تعارفی به او کرد و خواست به راه خود ادامه دهد ولی اوبلانسکی خود را به او رسانید و گفت آیا تو به موسکو میایی و به خانه ای ما نمیایی کارنین با حالت خشن گفت وقت ندارم ما شد در جشنی که شاهزاده شرباتسکی به مناسبت نامزدی دخترش کاترین با میشل لیفین برپا خواهد کرد شرکت خواهیم نمود و تا هم باید با ما بیایی کارنین گفت من فردا از عصر ترت را ترک خواهم کرد چون یک معمولیت رسمی دارم. برادر همسرش گفت پس لاقل لاها را در خانه ما صف کن. نه من به خانه شما نمی زیرا خیشی ما با شما از بین رفته است. چه می گویی؟ مقصودت چیست؟ مقصودم این است که مقدمات طلاق خوهرت را فراهم می کنم. ابلوزکی از شنیدن این کلام طوری مبکوت گردید که زانوهایش دست شده و به دیوار تکه داد تا بر زمین نیفتد. همین که کمی حالش به جای آمد پرسید آه پروردگارا کارنین چه میگویید؟ من حقیقت را میگویم. من چون دیدم که دیگر نمیتوانم زندگانی با آننا را ادامه دهم تصمیم گرفتم که او را طلاق بدهم. ولی کارنین گوش بده. من آدم منصفی هستم. شاهی نظر از اینکه آننا خواهرم باشد من او را نمونه زنی کامل میدونم خوب است در این امر چنیش فکر کنی و عجله در این کار ننمایی کارنین گفت من کاملا فکرهای خود را کرده و تصمیم قطعی خود را اتخاذ نمودم برادر همسرش گفت من یک خواهشی از تو دارم و آن این است که قضیه را با داریا که هم خواهرم و هم تو را دوست می دارد در میان گذاری تو را به خدا قسم می دهم که فردا برای صرف نهار به خانه ما بیایی خب بگو ببینم آیا فردا ظهر منتظرت باشم حال که این همه اصرار بیکنی خواهم آمد آقای کارنین خیلی متشکرم منتظر شما هستیم تا فردا خدا نگهدار فصل پنجم وقتی کارنین روز دیگر به خانه یه رفت دید جوانی که در روزنامه نگاری کار می کند میهمان می باشد. این جوان پوشکین نام داشت همگی غذا را در محیط آرام و با صفایی صرف کردند و صحبت های مختلفی به میان آمد تا اینکه پوشکین صحبت زن روسی و حقوق و لزوم مساوات و برابری او را با مرد به میان آورد پوشکین طرفدار حقوق زن بود و در خلال صحبت خود گفت که عدم مساوات و برابری بین زن و مرد در خیانت زناشویی کاملا واضح و آشکار میگردد. قانون و افکار عمومی درباره مجازات و مسئولیت زن و شوهر رعایت مساوات و برابری را نمیکند. کرنین با خونسردی به پوشکین گفت: ولی طبیعت ایجاب کرده است که این فرق و عدم مساوات بین زن و مرد به وجود آید. پوشکین گفت: به این مناسبت راستی خبر دارید که برالینکوف امروز کافیسکی را به مبارزه و جنگ تنبتن تلبیده و او را کشت. دیگران گفتند. چرا او را به مبارزه تلبید؟ به خاطر همسرش. و الحق برالینکوف با دعوت حریف خود به دول و کشتن او مردانگی خود را ثابت نمود. کارنین آهی کشیده چهرش ابوس شد و به سوی سالن پذیرایی رفت. داریا دنبال او شتافت و گفت از اینکه امروز ما را سرافراز کردید کمال تشکر را از شما دارم راستی شما از حال انه کارنینا به من اطلاعی ندادید حال او چطور است کارنین بدون آنکه نگاهی به چهره او بکند گفت گمان میکنم حالشان خوب باشد ببخشید آقای کارنین من آنا را چون خواهر خود دوست میدارم از این رو جسارت کردم از شما میپرسم که چه اتفاقی بین شما رخ داده است کارنین گفت خانم، گمان میکنم شوهرتان برای شما تعریف کرده باشد که به چه علت من میخواهم همسر خود را طلاق بدهم زن گفت ولی من گمان نمی کنم که آن کارنین خیانتی به شما کرده باشد و بدون شک شما اشتباه میکنید کارنین گفت خانم، من اشتباه نمی کنم من به قدری بدبخت شدم که از پسرم نیز بدم میآید زیرا بعضی اوقات چونین حس میکنم که او فرزند من نمی باشد زن گفت راستی خیلی وحشت آور است که آن کارنینا به شوهر خود خیانت کرده باشد. خوب، آیا شما تصمیم گرفتید که او را طلاق بدهید؟ کارنین گفت: مگر غیر از این چاره هم دارم؟ داریا اندوهناک شده، سکوت اختیار کرد و پس از لحظه سر بلند کرد و مثل اینکه به درگاه خدا تضرع و دعا میکند دستهای خود را بر روی سینه گذاشت و گفت: شما مرد دینداری هستید و دین امر به گذشت و ترحم آخر فکر کنید که اگر شما آن کارنینا را تلاق بدهید، او در چه پرتگاه مخفی سرنگون خواهد شد؟ کارنین گفت، او چون به خیانت خود و رسوایی من اعتراف نمود، لذا من میخواستم او را نجات بدهم، به او خیلی فرصت دادم که تصمیم خود را بگیرد و دست از کارهای زشت خود بکشد، ولی او نه فقط این فرصت را از دست داد، بلکه در خانه من، آری، در خانه مقدس زناشویی به شوهر خود خیانت کرد و با معشوقش ملاقات نمود. آیا انسان می تواند شخصی را که مرگ دنبال می نماید نجات دهد؟ پس طریعت آدم فاسد را هم نمیتواند دیگرگون دیگر سازد. زن گفت، ولی آخر شما میدانید که قانون و مقررات کلیسا چه می باشد؟ اگر زنی بر اثر صبوت خیانت به شوهر خود مطلقه گردید، دیگر نمی نمیتواند زوجه هیچکس بشود آه چه آرو ننگ و بدبختی از این بالاتر کارنین شرانه های خود را بالا افکن و گفت ولی من چه می توانم بکنم؟ در هر حال من از نیت پاک و قلبی شما تشکر می کنم برون از شما خواهش می کنم که به من اجازه بدهید مرخص شوم زیرا برای کار لازمی باید همین امروز عطر مسکوات حرک گفته و پس از سه روز مراجعت نمایم آقای کارنید. لحظه ای صبر کنید در بدبخت کردن آن کارنینا عجلین نکنید اجازه دهید من درباره خود برای شما تعریف کنم. من ازدواج کردم شوهرم به من خیانت کرد. من در حال هیجان و خشم و حسادت خواستم برای همیشه او را ترک نمایم ولی صبر کردم تا بر سر عقل آمدم. فقط به همت و دانایی آن کارنینا بود که من از شوهرم جدا نشدم. آن آنکارنینا مرا نجات داد و من اکنون با کمال خوشبختی با اولاد خود زندگی می کنم شوهرم پی به اشتباه و گناه خود برده و برد از کرده خود پشیمان شد همانطوری که من شوهرم را بخشیدم شما هم از گناه همسرتان درگذرید گذارید کارنین گفت من مرد خشنی نیستم و از کسی هم نفرت ندارم ولی بیندازه از آنا کارنینا بیزار شدم هرگز نمی توانم خیانت و افتضاح و را که او برای من ایجاد کرده است فراموش کنم و او را ببخشم. چشمان کارنین پس از عدای این کلمات پر از عشق شد و داریا هم با کمی تردید گفت ولی در کتاب مقدس آمده آن کسانی را که از تو بدشان می دوست بدار. کارنین توسط تلخی نمود و گفت ممکن است کسانی را که از او بیزارند دوست بدارد، ولی ممکن نیست از کسی که نفرت دارد خوشش بیاید و او را دوست بدارد. فصل ششم کارنی این پس از سه روز که مأموریت رسمی خود را پایان داد، به مسکو مراجعت کرد. به همان مهمان خانه که سابقه داشت شکافت. تصمیم او این بود که روزی در مسکو مانده با وکیل خود درباره قضیه تلاق صحبت کند. ولی نهار را صرف نکرده بود که پیش خدمت مهمان وارد شده تلگرافی به دست او داد. همین که آن تلگراف را خواند دهانش از تعجب باز ماند. زیرا نام آنا کارنینا را در زیل ورقه تلگراف مشاهده نمود. مضمون تلگراف این بود که من دارم می میرم. از تو خواهش میکنم که بیایی. میخواهم مرا ببخشی و پس از آن دیده از جهان بربندم. کارنین ما نگاه تحغییرآمیزی کلمات تلگراف را خواند و آن را بر زمین انداخت و پیش خود چنین گفت آنا کارنینا میخواهد فریبم داده به سوی خود بکشد تا اعتراف به شرعی بودن طفل بنمایم و او را پسر خود بخوانم و جلوی تشریفات طلاق را بگیرم ولی چرا از مرگ صحبت میکنید در این موقع تلگراف از روی زمین برداشته دو مرتبه خوانده شد و گفت بر فرض احساس مرگ و اتخاظ چنین تصمیمی آیا سزاوار است که درخواست او را رد کند و در این صورت این یک نوع قصاوت و سنگ نخواهد بود؟ آه. کارنین تصمیم گرفت به پترزبورگ برود و زوجه خود را ملاقات کند. اگر دید که وی را فریب داده، بدونم که چیزی بگوید فورا مراجعت نماید و هرگاه مشاهده کرد که در حالت احتضار است و بخشش می از گناهش چشم پوشیده و او را ببخشد. کالسکه کارنین برابر خانهش ایستاد. کارنین از کالسک پایین آمده داخل خانه شد و از دربان پرسید: حال خانم چطور است؟ دربان گفت ایشان دیروز وضع هم کردند کارنین در جای خود خوش گشت زد رنگ از رویش پرید و از خدا میخواست که زوجش هرچه زودتر بمیرد باز کارنین از دربان پرسید: خانم در چه حال است؟ دربان گفت حالش خوب نیست پزشک از دیروز بر سر بالینش می باشد. کارنین با امیدوار شدن به مرگ همسر خود گفت، چمدان مرا از کالسکه بیاورد. آنگاه داخل خانه شده، از راهروی بزرگ گذشت، بر روی جارختی یک پالتوی افتری را مشاهده نمود و از یکی از نوکران پرسید، در اینجا کیست؟ نوکران جواب دادند، طبیب، ماما و کونت فرانسکی. کارنین داخل اتاق پذیرایی شد، ولی کسی را در آنجا نیافت. در آن موقع ماما از خوابگاه آنا کارنینا خارج شد و همین که چشمش به کارنین افتاد فریاد بر خدا رو شکر که مراجعت کردید خانم پیاپی پی نام شما را میبرد. در این موقع کارنین صدایی را از داخل اتاق شنید که فریاد میزد. زود یخ بیاورید کارنین فوری دریافت که آن صدای طبیب است کارنین داخل اتاق او شد و فرونسکی را دید که بر روی نیمکتی نشسته، سر در میان دو دست گرفته و گریه میکند. فرونسکی همین که کارنین را مشاهده کرد، از جای برخاست و گفت: او در حال مرگ است و امیدی به زندگانی او نیست. من در اختیار شما هستم، ولی از شما خواهش میکنم به من اجازه دهید که در اینجا بمانم. کارنین به هر زحمتی بود، خودداری کرد و بدون اعتنا به فرونسکی، داخل خوابگاه آنه کارنینا شد. کارنین دید که آنا بر روی تخت دراز کشیده و چشمانش می و در حالی که چهرش برفروخته است با صدای بلند می گوید مقصودم کارنین است او بدون شک خواهش مرا نپذیرفته و حاضر خواهد شد او آدم نیک فطرت و خوش قلبی است. خود او هم نمیداند تا چه حد بزرگوار و پاک دل است آه پروردگارا چقدر هوای این اتاق خفه کننده است کمی آب برایم بیاورید. بچه را به پرستار بدهید که از اتاق بیرون ببرد. اکنین کارنین خواهد آمد و دیدن بچه متعلم می گردد. طبیب در حالی که لبان آننا را با آب تر می کرد گفت. خانم آرام باشید. شوهرتان آقای کارنین تشریف آوردند. آنا شوهر خود را ندیده و شاید هم کلام طبیب را نشنیده. با صدای عجیبی گفت. بگذارید بچه خود را دختر خود را ببینم چرا هنوز شوهرم کارنین نیامده است شما میگویید که او مرا نخواهد بخشید ولی شما او را مانند من نمیشناسید. او خیلی بهربان و باگذشته است چشمان او شبیه چشمان سیرج است از این رو من جرأت آن را ندارم که به چشمان پسرم نگاه کنم آیا سیرج غذای خود را خورده است ناگهان چشمان آنها به کارنین افتاد و در جای خود جمع شد و مثل این بود که احساس ترس و وحشت می کنن زیرا زیراوی فوری گفت نه نه من از او بیمی ندارم ولی از مرگ می ترسم کارنین به من نزدیک شو زود باش به من نزدیک شو افریت مرگ با گام های سریعی به سوی من میآید و چیزی و چیزی نخواهد گذشت که نیروی خود را از دست خواهم داد و متوجه هیچ چیز نخواهم شد. من اکنون همه چیز را میبینم و همه چیز را میفهمم آری همه چیز را در این موقع علامات درد و شکنجه در چشمان کارنین ظاهر شد و دست زوجه خود را در دست گرفته خواست به او چیزی بگوید ولی لبانش لرزید و کلامی از دهانش خارج نشد وقتی کارنین به همسر خود نگاه کرد در چشمان او آثار مهر و محبتی را دید که سابقا ندیده بود از این رو درد و ناامیدی او افزون گردید آننا گفت صبر کن صبر کن من چی میخواستم بگویم لحظه ساکت ماند و مثل این بود که میخواهد حواست خود را جمع کند پس از آن در تعقیب سخنان خود گفت آری، خواستم به تو بگویم که من خواهم مرد فقط یک چیز را میخواهم و آن هم بخشش گذشت توست در این موقع حس کرد که درد و رنج او برطرف می گردد و احساس اطمینان و آرامش بی سابقه ای در خود می کند. یک مرتبه نصیحت کتاب مقدس به خاطرش آمد که دشمنان خود را ببخش و کسانی را که کس از تو متنفرند دوست بدار. کارنین از به یاد آوردن این نصیحت قلبش روشن شده و تصمیم گرفت از گناه آنا کارمینا چشم می‌پوشد و او را ببخشد. از این رو به زانو درآمد و شهره خود را بر روی دست سوزان آننا گذارد وشان اطفال به نای گریستن را گذاشت. آننا سر تاس شوهر را با دست نرم و ظریف خود گرفته و در حالی که در چشمانش نگاه های پیروز ای دیده میشد گفت. نگفتم که او مرا خواهد بخشید. ولی آن دیگری کجاست؟ چرا او نیامد؟ آننا فررونسگی را خواند و فریاد برآورد. زود باش بیا به او دست بده فرونسکی داخل شد همین که چشمش به محشوقه خود افتاد چهره خیش را در میان دو درد پنهان کرد آنا فریاد برآورد دستت را از چهره بردار و به کارنین نگاه کن او فرشته است نه انسان ولی سرونسگی حرکتی نکرد آنا رو به شوهر خود کرد و فریاد برآورد کارنین دست او را از چهرهش بردار من میخواهم صورت او را ببینم کارنین به سوی فررونس رفت و دست او را از اش برداشت در حالی که علامات خاری و مزلت سیمایش نقش بسته بود. آنها گفت کارنین به او دست بده و وی را ببخش. کارنین بدون آنکه بتواند جلوی های خود را بگیرد دست خود را به سوی فررونس گیده راست کرد. آنها با صدای ضعیفی گفت پروردگارا تو را سپاس گذارم می با آقوش باز مرگ را استقبال کنم طب آننا شدت پیدا کرد و آن روز را به هزیان گفتن گذراد نیمه شب بود که نبض آننا ضعیف شده و طبیب هر آن منتظر لحظه واپسین او بود فرونسکی رفت و صبح برای استفسار از حال آننا آمد کارنین خودش به استقبال او شتافت و وی را به اتاق آرایش برد و گفت در اینجا به من شاید آننا بخواهد تو را ببیند. روز سوم کمی حال آنا بهتر شد در همان روز کارنین به اتاق آرایش رفت و دری را که به خوابگاه آنها باز می شد بست و نیمکتی آورده و رو به روی فرونسکی نشست فرونسکی تصور کرد که کارنین می با او حساب تصدیه کند از این رو چنین گفت کارنین گوش بده من اکنون هیچ حواس ندارم و چیزی نمیفهمم اگر این وصل تو را متعلم می مرا هزار مرتبه بیشتر آنگاه خواست از جای برخی زد. ولی کارنین دست او را گرفت و گفت خواهش میکنم به سخنانم گوش بده من چنان چی میدانی مشغور تهیه مقدماتی طلاق بودم. همین که تلگراف آننا را دریافت کردم به اینجا آمدم ولی لحظه این ماند و سپس در تغییر سخنان خود گفت ولی من آننا را بخشیدم. چه در عفر لذتی هست که در انتقام نیست چشمان کارنین پر از عشق شد فرونسکی متوجه گردید و در جای خود خوش زد. کارنین به او گفت این است حال رقتبار من و تو می توانیم او مورد تمسخر قرار دهیم ولی من حاضر نیستم آننا را ترک گویم تو هم هیچ کنه گلب و شکایتی ندارم آری، وظیفه من این است که در کنار همسرم بمانم و اگر خواست تو را ببیند باز خبرت خواهم کرد. اکنون به خانه خود برو و استراحت کن. این به نفع توست. آنگاه از جای برخاست. در حالی که بغف راه گلوی او را گرفته و اشک از دیدگانش جاری بود، فرانسکی نیز از جای برخاست و خیره به چهره کار نگریست. زیرا مات و مبهوت بزرگواری او شده بود. فرانسکی کند با گامهای لرزان به سوی در رفت که میدید که از آن محیطی که با تکبر و غرور در آن خوش و خورم به سر می رانده شده است. فرمسکی اخلاق پر از ریا و درویی و اعمال ناشایسته و زنندهش را در نظر خود مجسم نموده. دید آن شوهری را که سابقا با نظر حقارت به او نگاه می است خیلی از او بزرگ بارتر و با شهامدتر می باشد. آری او دید که کارنین با گذشت و کرم خود بزرگ شد و او با خیانت و گناه خیش پست و حقیر گردیده است فراسکی به خانه خود مراجعه کرد و بدون آنکه لباس از تن بیرون آورد بر روی تخت خواب افتاد با اینکه سه شب نخوابیده بود آن شب خواب به چشمانش راه نیافت فرانسکی همهاش فکر می و صحنه های گذشته چون پرده سینما در برابرش مجسم می در حالی که به خود میپیچید چنین چون این گفت نه من باید بخوابم و همه چیز را فراموش کنم. ولی درک خاری و مزلت احساس بزرگواری کارمین و اینکه که رابطش با آنا کارمینا به این شکل شرماور قطع گردیده است خونش را به جوش آورده و قلبش را دردناک ساخت. چون حیوان تیخ‌خرده‌ای ناله کرده، یک مذهب گفته‌ی آنا به خاطرش آمد که دستهایش را از چهرش چرایش بردار و به صورت او نگاه کن، او فرشته است، نه انسان. فرونسکی چون بر اثر این افکار نتوانست است در جای خود نشست و گفت: آه چگونه من می توانم بدون آنا زندگی کنم؟ آنگاه درباره‌ی ارتش و جامعه و آینده خود اندیشه کرد. نگران گردید و عقلش مختل شد از جایی برخواسته در اتاق بنای قدم زدن را گذاشت در حالی که با صدای بلند چونین میگفت یک چونین مردمی دیوانه میشوند و خودکشین کند آنگاه در اتاق را از داخل بسته تپانچش را از کشو بیرون آورده لوله آن را به سوی سینه نگه داشت و تیری خالی کرد بخشیدن زوجه خود نمود و آن این بود که تصور نمیکرد آنا آننا بهتبودی حاصل کند و بعد هم عهد خود را بشکند چنانچه این اشتباه او دو ماه پس از مراجعتش از موسکو با سخت ترین بچی آشکار گردید اطرات اشکی که آنا کارنینا در بستر مرگ از دید فرو ریخت کارنین را متاثر ساخته اشکش را جاری ساخت و او را مجبور کرد که آننا را ببخشد و از گناه فرنفگی چشم بپوشد. همچنین نسبت به پسر خود سیرج مهر و شفقت نمود. اما نسبت به دختری که آنا کارنینا تازه به دنیا آورده بود گرچه تردید پیدا کرده بود ولی به معصومی و بیگناهی او رقت آورده و در کنار گهه ایستاد. با مرور زمان کارنین حس کرد آن وقت که برای خود انتخاب کرده و از آن خوشش آمده، ممکن نیست برای مدت زیادی ادامه پیدا کند. چون این تصور می کرد که مردم با تعجب و دهشت او را می و منتظرند تا ببینند که درباره زوجه و فریب ی همسرش چه اقدامی خواهد کرد. همچنین می پنداشت که زوجهش با ترس و وحشت او را می و سعی دارد به چهره او نگاه نکند. همیشه مثل این است که میخواهد چیزی به او بگوید ولی چون میداند علاقه آنها مصنوعی و موقتی است ممکن نیست که خیلی ادامه پیدا کند و از اظهار آن مطلب خودداری می نماید. در یکی از روزها کارنین به خانه مراجعه کرد و پالتوی پوست گرانبهایی را در جا دید و از خادم شنید که شاهزاده خانم سی به دیدن آننا آمده است. کارنین به سوی اتاق همسر خود رفت و او ابداً به خیال این نبود که از پشت در سخنان کسانی رو که در داخل هستند بشنود. ولی همین که نزدیک اتاق آنا شد شنید که شاهزده خانم بسی میگوید من نمیدارم علت اینکه حاضر نیستی او را ببینید چیست او به به پیترزبورگ خواهد رفت و من یقین دارم شوهرت تو را از دیدن او من نخواهد کرد زیرا افکار شوهرت عالی تر از این خواست ب... آننا گفت من به خاطر شوهرم نیست که نمیخوام با او ملاقات کنم. بلکه برای این است که میل ندارم او را ببینم. خوب است که دیگر درباره این موضوع صحبت ننمایی. ولی شایسته نیست با مردی که نزدیک بود به خاطر تو خود را بکشد، خداحافظی ننمایی. آنا گفت: من مخصوصاً به خاطر این امر نمیخواهم او را ببینم. در این موقع کارنین صرفی کرده، در را باز نمود و داخل شد. دو زن ساکت شدند. آنا با حرکت سر جواب سلام کارنین را داده و از روی نگرانی نگاهی به شاهزاده خانم بتسین انداخت. اما بسی تبسم پیروز ای نموده و به کارنین گفت از اینکه پس از چند هفته شما را میبینم خوشبختم. از بزرگواری و گذشت شما چیزهایی شنیدم. الحق شما از بهترین شوهران هستید. کارنین با سردی خم شد تا دست همسر خود را بوسید و از صحت او پرسید. آنها در حالی که سعی داشت به چشمان او نگاه نکند گفت بمان میکنم که حال من این روز بهتر باشد. کارنین گفت ولی از نگاه های تو چنین به نظر می‌رسد که بتسی گفت آنا خیلی وقت است که من اینجا هستم اجازه بده بروم آنا دست او را گرفت و گفت نه بمان من میخواهم همه چیز را به او بگویم و چیزی از روی پنهان ندارم آنگاه آنا رو به کارنین کرد و گفت بتی میگوید که کنفرانسکی مایل است پیش از آنکه به تاشکند مسافرت کند به دیدن ما آمده و با ما خدافیتی کند آننا این کلمات را با سرعت عدو کرد و مثل این بود که می خواهد از بار سنگینی به هر قیمتی که شده است شانه خالی کند. آنگاه در سعقی کلام خود گفت ولی من به او گفتم که نمی با او ملاقات کنم. حقیقتش را بخواهید ما یه نیستم او را ببینم.